انجمن مردان کامل پیتر لاویسی ترجمه مینا فرشیدنیک نیک دعوتنامه روی پادری حسیری افتاده بود کنار یک صورت حساب بانکی و یک بروشور سفارش سکه های راهنما برای نابینایان پاکت کرم رنگ و زخیمی داشت که به نظر گران قیمت می آمد. دانکن گذاشتش کنار تا بعد از بقیه باز کند عادت داشت وسوسه انگیز ترین نامه را برای آخر نگه دارد. بالاخره با چاقوی مخصوص کاغذبوری پاکت را باز کرد و یک کارت حاشیه تلایی را دید که رویش نوشته بود، انجمن مردان کامل مفتخر است که جناب آقای دانکن دریفیلد را به عنوان یک کمالگرای تمام ایار و عضو افتخاری این انجمن به مهمانی شامی که در روز جمعه 31 جانویه ساعت 7.30 دقیقه شب برگزار می شود دعوت نماید. تماس تلفنی متعاقباً برقرار خواهد شد. دانکن آدم محتاطی بود. ممکن بود قضیه یک جور ترفند زریف بازاریابی باشد، قبلا هم یک فروشگاه لوازم منزل و یک نمایشگاه اتومبیل او را به مهمانی دعوت کرده بودند اما آخرش معلوم شده بود که فقط قصد داشتهاند چیزهایی به او بفروشند با این حال سردر نمیآورد چرا در این دعوتنامه اسم هیچ محصول یا شرکتی ذکر نشده است چند بار دیگر هم آن را مرور کرد از تعبیر کمالگرای تمام عیار خیلی خوشش آمده بود اما دعوتنامه اسم و آدرس مشخصی نداشت و این فکرش را مشغول می کرد. ساعت هشت و سی دقیقه بعد از ظهر روز بعد زنگ تلفن به صدا درآمد. صدای آن طرف گوشی با لحنی رسمی گفت شما دعوتنامه برای حضور در یک مهمانی شام در تاریخ 31 ژانویه دریافت کردین. همینطوره؟ منظورتون کدوم دعوت است؟ دانکن طوری وانع بود می که انگار چنین دعوت هر روز به دستش می یک کارت با حاشیه طلایی که شما رو با عنوان یک کمالگرای تمام ایار مورد خطاب قرار داده. میتونیم امیدوار باشیم که دعوت ما رو بپذیرین؟ میبخشید شما دقیقا متعلق به چه گروهی هستین ؟ گروهی از افراد همفکر؟ ما مطمئنیم که شما با این گروه همسنخی. چطور به اسم من رسیدین؟ یک کمیته راجع به این موضوع تصمیم گرفت. شما برجسته نامزد برای این انتخاب بودید. جدا؟ دانکن زوق زده شده بود اما سعی کرد به خودش مسلط شود. مجبور نیستم سخنرانی کنم؟ ما برای سخنرانی کردن دوره هم جمع نمیشیم اصلا فضای مراسممون اینطوری نیست ما هرانش از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا به شما خوش آمد بگیم و اسباب راحتی شما رو فراهم کنیم وسیله رفت آمد هم ماحیه است ممکنه اسم شما رو بپرسم؟ البته من دیوید هابکینز هستم جدا امیدوارم که جوابتون مثبت باشه با خودش فکر کرد چرا که نه؟ بسیار خوب آقای هاب الی شد. ممنون میشم اگر رأس ساعت 6 و سی دقیقه آماده باشین. در ضمن باید عرض کنم که این یه مهمونی شام رسمیه که همه مدعوین با کت و شلوار در اون حاضر میشن. من شخصا به دنبال شما میام. نکته آخرین که من در از دکتر هابکینز هستم اما لطفا من رو دیوید صدا کنید. بعد از این تماس تلفنی، دانکن سعی کرد به شیوه معمول خودش، ردپای دیوید هاپکینز را در دفترچه اطلاعات تلفنی و دفتر ثبت مشخصات پزشکان پیدا کند. سه نفر را با این نام پیدا کرد و به تک تکشان تلفن کرد، اما هیچ کدام دیوید هاپکینز نبودند که با او صحبت کرده بود. متعجب بود که چه کسی نام او را به کمیته پیشنهاد کرده است. علاقه من بود بداند آیا با دیدن دیوید هاپکینز او را میشناسد یا نه. او را نمی‌شناخت. در آخرین جمعه ژانویه دکتر هابکینز، مردی حدوداً چهل ساله لاغرندام و با قدی متوسط درست سر ساعت به خانه او رسید با هم دست دادند از ظاهر دیوید خوشش آمد احساس میکرد که یک بعد از ظهر خاص و استثنایی در انتظارش است به سمت ماشین رفتند یک مرسدس مشکی با راننده شخصی وقتی هر دو سوار شدند دیوید به اطراف خم شد و تمام پردهها را پایین آورد دانکن حالا اصلا نمی توانست بیرون را ببیند امیدوارم که با این موضوع مخالفتی نداشته باشین. اگه ندونین محل برگزاری مراسم کجاست، موردی برای نگرانی اعضای دیگر انجمن پیش نخواهد اومد. متوجهم اما میتونم یکم بیشتر راجع به این انجامن بدونم؟ ما همه از زمره افرادی مثل خود شما هستیم. مردان کامل. اما چطور شناسایی و دعوت شدم؟ کسی از اعضا رو میشناسم؟ بعید میدونم. پس چطور دستاورد بی و چرای شما دانکن سعی کرد به خاطر بیاورد کدام دستاوردش در طول زندگی ممکن است مورد توجه قرار گرفته باشد. او یک شغل پیش پا افتاده در اداره خدمات اجتماعی داشت. مدت کوتاهی با یک گروه کر محلی همکاری کرده بود. یک بار جایزه اول مسابقه گلوگیاه شهرشان را به خاطر بوته نخود سبزش برده بود. اما در حال حاضر پرورش آن را هم متوقف کرده بود. در کل هیچ چیز ممتازی به نظرش نرسید که مورد علاقه چنین انجمن مهمی باشد. انجمن چند عضو داره؟ خیلی کمتر از اونی که ما آرزو داریم. تا به حال پنج نفر، کسانی که حائز معیارها هستند زیاد نیستند. ما کم تعداد اما منحصر بفردیم. در کمتر از یک ساعت اتومبیل به مقصد رسید و راننده در را باز کرد. هوا تاریک شده بود، اما واضح بود که در یکی از میدانهای لندن هستند. بار ردیف چراغ‌های در دو سوی خیابان، فضای سبزی در میانه و چند ردیف موازی از درختان در برابر امارتی قدیمی. دیوید گفت مستقیم بالای پله‌ها، در بازه. از سالن آینکاری گذشتند که چلچراغی بزرگ آن را روشن کرده بود. نور سالن که در مقایسه با فضای نیمه تاریک اتومبیل خیلی شدید بود، چشمش را میزد. دیوید کت دانکن را گرفت و به پیش خدمت داد. بعد دری را باز کرد و گفت: آقایان مفتخرم که مهمان ویژهمان آقای دانکن دریفیلد رو به حضورتون معرفی کنم. یک اتاق انتظار کوچک که در آن چهار مرد با لیوانهای نوشیدنی در دست به انتظار ایستاده بودند. دو نفرشان کاملا پیر بودند و بقیه حدودا چهل ساله، یکی از مردهای جوانتر لباس محلی اسکاتلندی بهتن داشت. یکی از آنها که احتمالا ارشد جمع محسوب می دست استخانیش را دراز کرد و با دانکن دست داد. جو فرانکس. من سرپرست انجمن هستم و ادامه داد سال 1934 برای عضویت در انجمن واجد صلاحیت شدم اون موقع فقط 19 سالم بود دیوید زیر گوش دانکن چیز نامفهومی زمزمه کرد درباره جسدی که داخل چمدانی در ایستگاه راهن برایتون پیدا شده بود جو فرانکس ادامه داد این هم دوست ورزیدمون وال وینتروپ کسی که برای اولین بار رایسین رو به بهره برداری اقتصادی رسوند والی در حال حاضر صاحب یکی از بزرگترین فروشگاه های در در اروپاست. دانکن پرسید، گفتید رزین رایسین، یه سم گیاهی. فهمیدن ارتباط بین یک سم گیاهی و مالکیت یک سوپرمارکت زنجیره‌ای خیلی دشوار بود. والی تروپ با پوزخندی دستش را جلو آورد و با دانکن دست داد. یکی از همین روزا دربارهش بیشتر صحبت می‌کنیم. نفر بعدی مردی بود که لباس محلی اسکاتلندی پوشیده بود. الکس مکفی جوانترین عضو انجمن و از پرکارترین عزاست. هفت تا. همینطور الکس؟ مکفی گفت تا به حال. و این گفتگو سردرگمی دانکن را بیشتر کرد. خنجر اسکاتلندی الکس بیش از یک بار به کمک انجمن اومده. دانکن چندان با فرهنگ اسکاتلندی آشنایی نداشت و با خودش فکر کرد که حتما از این خنجر در مراسم و تشریفات آیینی انجمن استفاده می‌شود و حالا با مایکل پیت آشنا شو. مایکل مشاور گروه ضربت ارتش در زمینه هنرهای رزمیه. دانش اون درباره ضربات کشنده روی نقاط حساس بدن بی‌نظیره. خیلی با احتیاط باش دست بده. لبخندی بر لب همه نقش بست. بخصوص خصوص برلبان مایکل پیت که دست دانکن را آنچنان فشرد که شکی در مهارتش باقی نگذاشت و البته عضو دکتر ما را هم که قبلا ملاقات کردید دیوید هابکینز که درباره واکنش های الرژیک بیش از هر متخصصی در دنیا اطلاعات داره دانکن در حالی که تمام تلاشش را به خرج می داد تا رفتارش دوستانه به نظر برسد گفت چه جمع جالبی از استعدادها، اما من هنوز نمیتونم بفهمم که چه چیز مشترکی اعضای این انجامن رو به هم پیوند میده. جو جواب داد، ما هر کدوممون حداقل یه قتل بیعیب و نقص انجام دادیم. دانکن چیزی را که شنیده بود در ذهنش سبک سنگین کرد تا مطمئن شود درست شنیده است. این جمله با کمی قرور بیان شده بود، این بار هیچ کس نخندید. و با علاوه به نحو استراباوری نه هیچ کس انکار کرد و نه حتی مخالفتی به خرج داد. در همین لحظه جوفرانکس پیشنهاد کرد آقایان موافقید که شام رو صرف کنیم. پشت میز شام در اتاق مجاور، دانکن داشت سعی می کرد ادعای عجیب و غریبی را که شنیده بود به نحوی هضم کند. اگر این ادعا درست بود، او اینجا چه کار می کرد با یک ادعای قاتل سر یک میز شام. و چرا آنها او را برای این اعترافشان انتخاب کرده بودند؟ اگر او رازشان را پیش پلیس فاش می کرد، آنها دیگر قاتلان تمام عیار نبودند. البته آقلانه اش این بود که هیچ اشاره به این موضوع نکند. آن هم الان که درست بین متخصص هنرهای رزمی و مکفی اسکاتلندی و خنجرش نشسته بود. پیش خدمت مسنی مشغول پذیرایی از آنها بود. جو فرانکس گفت، مجارستانیه، یک کلمه هم انگلیسی نمی بعد لیوان نوشیدنیش را بالا برد و گفت. در این لحظه میخوام پیشنهاد کنم به افتخار توماس دی کوینسی بنوشیم به خاطر مقاله درخشانش که در اون قتل رو به عنوان یکی از اقسام هنرهای زیبا معرفی میکنه و از مرگ سر ادموند گوتفری به عنوان زیبا اثر هنری قرن هجده نام میبره قتل تمام و کمالی که هیچ وقت نفهمیدن کاری کیه همه یک صدا گفتن توماس دی کوینسی والی ویندروپ گفت ممکنه فکر کنید برملا کردن کردن چنین رازی برای دیگران خیلی ناخوشاینده اما برعکس، موجب آسودگی خاطر آدم میشه. دانکن نمیتونم برات توصیف کنم که مرحله اول زندگی آدم بعد از ارتکاب یک قتل با چه ترس و هراسی همراهه. هر لحظش در انتظار شنیدن صدای آژیر های پلیس و زربه هایی به در میگذره. در طول ماه های بعدی همینطور که زمان میگذره این مرحله پر از بیم و حراس با نوعی احساس انزوا و تنهایی جایگزین میشه. کاری کردی که تو رو از دیگران جدا میکنه. بقیه عمرت رو تصور میکنی در حالی که مجبوری این راز سر به رو همیشه مخفی نگهداری وحشتناکه. همه ما این احساس رو تجربه کردیم. برای من این دوره پنج سال طول کشید. پنج سال آزگار. بدون اینکه به اتهام قتلی که انجام داده بودم متهم شم تا اینکه بالاخره به مراسم شام انجمن دعوت شدم دیوید هاپکینز در تکمیل صحبت‌های والی اضافه کرد اینکه کشف کنی در این دنیا تنها نیستی مثل یک رؤیاس فهمیدن اینکه ارزش و اعتبار کاری که انجام دادی میتونه به طور آزادانه در جمعی از همفکرات مورد بحث و بررسی قرار بگیره محشره. روی هم رفته انجام دادن یک قتل شست رفته جدا کار ارزشمندیه. دانکن بدون اینکه چیزی بروز دهد پرسید: از کجا میدونین که میتونین به من اعتماد کنین؟ منافع مشترک. اگه یکی از ما به دیگران خیانت کنه، خودش هم گیر میفته. ما هممون توی یه قایق سواریم. جوفرانکس توضیح داد: این یه شیوه امنیتیه که بیشتر از 100 سال دوام آورده. بنیانگذار این تشکیلات به جک سلاخ معروفه وقتی هویت واقعی اون بعد از این همه سال در انجامن محفوظ مونده دیگه دلیلی نداره ما نگران باشیم باورم نمیشه منظورتون همون قاتل سریالی اواخر قرن 19 همه؟ شما واقعا هویت اصلی جک رو میدونین من الان میتونم اسمش رو بپرسم جوفرانکس گفت نه تا وقتی که رسما به ما ملحق نشدیم دانکن دو دل بود از طرفی می‌خواست اعتراف کند که هیچ شانسی برای پیوستن به آنها ندارد چون هرگز قتلی انجام نداده است اما از طرف دیگر صدایی از درونش به او می‌گفت که بهتر است ساکت باشد این آدمها داشتن طوری رفتار می‌کردند که انگار او یکی از آنهاست شاید اشتباه کرده بودند اما در حال حاضر بهتر بود سعی نکند آنها را از اشتباه بیرون بیاورد جوفرانکس اضافه کرد البته ما مطمئنیم که شما مایل به عضویت هستید اما به هر حال از شما میخواهیم که به قوانین احترام بذارین. لطفا راجع به این مراسم شام و وجود این انجامن حتی یک کلمه هم با کسی حرف نزنین. طبق قوانین درباره کسی که خیال احمقانه لو دادن انجمن به ذهنش خطور کنه اشد مجازات اعمال میشه تاکن دستپاچه پرسید اشد مجازات خب این اشد مجازات چی هست هیچ کس جوابی نداد به جز اسکات که کنار دانکن نشسته بود و پوزخندی لب داشت که دانکن اصلا از آن خوشش نمی آمد. خنجر اسکاتلندی؟ جوفرانکس اضافه کرد؟ یا زربات کشنده؟ یا یک واکنش آلرژیک مرگبار؟ یا هر وسیله دیگه ای که اوزار رو رو به راه کنه؟ پیش غذا صرف شد و دانکن خوشحال بود که بحث به سمت رمانهای جنایی منحرف شده است، آخرین چیزی که به گوشش خورد بحث در مورد سکوت برها بود و بعد از آن سخت درگیر افکار خودش شد اینکه اگر یکی از آنها در مورد قتلی سوال کرد که ظاهراً قرار بود او مرتکب شده باشد چه جوابی بدهد مطمئن بود که پیش از پایان مهمانی حتما به این موضوع خواهند رسید و آن وقت او می بایست جواب قانع کننده‌ای برای آنها داشته باشد اگر میفهمیدند که او یک آدم ملایم است که حتی آزارش به یک مورچه هم نرسیده حسابی به دردسر سر نزدیک آخرشان بود که دانکن شروع به صحبت کرد. به نظرش بهتر بود در شروع کردن بحث پیش دستی کند. شانس این رو دارم که به شما ملحق شم؟ جو فرانکس گفت پس بالاخره تصمیم خودتون رو گرفتین. فقط پیش از اون که رسما به عضویت انجامن در بیایید، لازم شواهدی ارائه بدین که ثابت میکنه یکی از ما هستین. دانکن آب دهانش را به سختی قرد داد. یعنی شما خودتون شواهد کافی ندارین؟ مسلما اگه شما خودتون چیزی دستگیرتون نشده بود من الان اینجا نبودم؟ البته، اما بین حدث ما و اثبات اون از طرف شما تفاوت زیادی هست. دانکن سعی کرد ترفند دیگری در پیش بگیرد چطور به راز من پی بردین؟ لبخندی بر لب همه نقش بست وینتروپ گفت حتما تعجب میکنین که ما چطور در کشف مواردی موفق میشیم که حتی پلیس هم درباره اونها شکست میخوره مایکل پیت ساکت و قوی هیکل اضافه کرد ما خوب میدونیم که در بعد از ظهری که اون قتل اتفاق افتاد شما در محل وقوع جرم حضور داشتید هیچ کس دیگه ای انگیزه و فرصت شما رو برای ارتکاب اون قتل نداشته اما شما باید مدارک قطعی نشونمون بدین مثلا وسیله که قتل باهاش انجام شده دانکن فلبداه گفت اون رو که سر به نیستش کردم دانکن آدم خیال پردازی نبود ولی این موقعیت مرگ و زندگی بود شما هم قاعدتا همین کار رو میکنین نه مکفی گفت نه من فقط سلاح خودم رو پاک میکنم همین وینتروپ گفت خب این دیگه به خودتون بستگی داره دوست عزیز چقدر فرصت دارم نشست بعدی در ماه جولای تشکیل میشه و ما امیدواریم که عضویت شما رو توی اون نشست قطعی کنیم مراسم با صرف قهوه و کشیدن چند سیگار بالاخره تمام شد اتومبیل بیرون در منتظر بود در مسیر برگشت دانکن به شدت آشفته بود اما تمام سعیش را کرد که این آشفتگی را بروز ندهد و در عوض اطلاعات بیشتری از دیوید به دست بیاورد بعد از ظهر فوقلادهی بود اما فقط یک مسئله کوچیک تو ذهنم باقی مونده. چه مسئلهی؟ راستش من دقیقا متوجه نشدم که امروز توجه همه به کدوم جنایت من جلب شده بود. منظورت اینه که تو یه قاتل زنجیری هستی؟ دانکن آبدهانش را قورت داد چون اصلا چنین منظوری نداشت. حتی فکرشم نکردم که بتونم همچین آدمی باشم. و بعد برای اینکه اعترافش را اصلاح کند بلافاصله اضافه کرد البته این باوری بود که فقط تو ذهنم داشتم خب نگفتی که منو برای کدوم جنایتم به این جمع دعوت کردین قتل جیکوب درینکواتر در کنفرانس سازمان خدمات اجتماعی برینگتون در سال 1995 درینکواتر در او در آن کنفرانس حضور داشت و به خاطر می‌آورد که جسد مقام عالی رتبه اداره خدمات اجتماعی در اتاق هتلش پیدا شده است البته همه تصور کردند که یک حمله قلبی بوده. دیوید گفت این چیزی بود که مقامات رسمی اعلام کردند. و شما چیز دیگه ای شنیدین؟ من تصادفاً پزشکی رو که مسئول کالبوت کافی بود میشناختم. یک منبع موسق. مقامات نمی‌خواستند مردم مطلع بشن که سر جیکوب به قتل رسیده. برای اینکه فاش کردن شیوه قتل اون میتونست موجی از ترس و حراس عمومی راه بندازه. سیانور چطور بکار بردی توی اتکالونش ریختی دانکن با زکات گفت راز حرفه‌ای البته نیروهای امنیتی با اون کو تهبینی خاص خودشون نمیتونستن تصور کنن که این قتل چیزی جزی حمله تروریستی باشه اونها نمیدونستند که تو یکینه دیرینه از اون داری که به سالها قبل برمیگرده وقتی تو اداره تامین اجتماعی رئیست بود به یک بار تکه های پازل در ذهن دانکن با هم جور شدن کسی که دیوید به او اشاره میکرد، فردی بود به نام چارلی درینکواتر که در ای که دانکن زیر دستش کار میکرد، زندگی دانکن را سیاه کرده بود و او را به بدبختی و فلاکت کشانده بود. اما او هیچ ربطی به این سرجه کوب درینکواتر نداشت. در حالی که سعی میکرد چیزی را بروز ندهد گفت و شما کشف کردین که من تو اون کنفرانس حاضر بودم. درست تو همون طبقه؟ قیبت در زیافت شام این فرصت رو برات فراهم کرد که وارد اتاقش بشی و سیانور رو در جای مناسب جاسازی کنی خب پس ما هم انگیزه رو داریم هم فرصت رو دانکن گفت و ابزار دیوید با خنده گفت اطراف خونه تو پوشیده از بوته است از این گذشته تو توی باغبانی استادی خیلی راحتی این امکان رو داشتی که توی باغچت گیاه مورد نظرت رو بکاری و از اسارش سیانور درست کنی اینطور نیست دانکن گفت ترجیح میدم توی تعلیق نگهت دارم و در حالی که ذهنش به شدت مشغول بود اضافه کرد به هر حال اگه قرار باشه به ملحق ملحقشم باید یه نمایش کامل برای ارائه داشته باشم جای ام و اگر نیست اونها دوستت دارن و انتظار دارن که بهشون ملحقشی اما اگه نتونم اثبات کنم که کسی رو کشتم چی به هر حال خودت باید راهش رو پیدا کنی وگرنه من نمیتونم پاسخگوی عواقب به باشم. یک پایان تکاندهنده برای آن بعد از ظهر. در طول سه هفته بعد دانکن به ندرت خوابید و در همان مواقع اندکی هم که خوابش میبرد کابوسهای وحشتناکی میدید، از انگشت هایی که شاهرگش را می یا خنجری که در میان دندههایش فرو رفته است. با یک تناقض فلسفی مواجه شده بود چه اقرار می کرد که مرتکب قتلی نشده است و چه به دنبال شواهد ساختگی می گشت هر دو خطرناک بود در صورت اول تهدیدی جدی برای انجمن محسوب می شد و حتما او را از بین می بردند و در صورت دوم اگر شواهدش اجالتا مورد تایید قرار می گرفت و به عضویت انجمن در میآمد آمد باقی عمرش را باید در این وحشت به سر برد که دستش رو شود. جور کردن شواهد ساختگی کار ساده ای نبود. آنها آدم های باهوشی بودند. دانکن به آرشیو روزنامه بریتیش رفت و تمام ها و وقایع های ماجرای مرگ سرجی کوب را بررسی کرد. اما آنچه دستگیرش شد ناامید کننده بود. دایره ویژه حملات تروریستی و وزارت اطلاعات و امنیت انگلستان با ماجرا درگیر شده بودند و به علاوه آن پرونده هنوز بسته نشده بود. چطور میتوانست مدرک قابل رؤیتی فراهم کند که به انجمن ارائه دهد. لانکن صورت دیگر ماجرا را هم پیش خودش سنگین میکرد. اینکه برای انجمن روشن کند که دوچار سوء تفاهم شدهاند. در حالت بسیار خوشبینانه اش ممکن بود آنها بپذیرند که به هر حال او مقصر نبوده، بلکه مثل یک وصله ناجور اشتباهی و ناخواسته در این جمع برخورده است. بعد قول میداد به خاطر حفظ جان خودش هم که شده حتی یک کلمه هم بر زبان نیاورد. اما به اینجا که می رسید، نگاه های برخی از آنها را به خاطر میآورد و میفهمید که ایدهش چقدر غیرعملی است. یکی از روزهای ماه می در اوج ناامیدی ایده بکری به ذهن دانکن رسید. این ایده از یکی از گفته های دیوید هابکینز در مسیر بازگشتشان از مراسم الهام می گرفتفت. از او پرسیده بود، منظورت اینه که تو یک قاتل زنجیری هستی. در آن زمان این حرف به نظرش مزهک رسیده بود، اما الان می توانست راه نجات او باشد. به جای اینکه بیهوده تقلا کند که خود را به قتل سر جیکوب متصل کند، می توانست ادعای قتل دیگری کند و مدارکی راجع به آن قتل را به انجمن ارائه دهد. به این ترتیب، هم قانون انجمن رعایت می‌شد و هم تصمیمگیری را برای همه آسان می‌کرد. قسمت درخشان ماجرا این بود که او مجبور نبود واقعا کسی را به قتل برساند. می توانست یک بیخانمان را پیدا کند که خودکشی کرده و بعد ادعا می کرد که او را به قتل رسانده است. تنها چیزی که احتیاج داشت مدارکی از صحنه وقوع حادثه بود. آن وقت می توانست در برابر انجمن ادعا کند که یک قاتل سریالی است. قاتلی که بعد از کشتن قربانی هایش آنها را به شکل بیخانمان هایی درمی آورد که خودکشی شان امری عادی است. به این ترتیب اعضای انجمن هوشش را تحسین می کردند و عضویتش قطعی می شد. بعد از مدتی هم از شرکت در مراسم سالیانه سر باز می زد و دیگر هیچکس مزاحم او نمی شد. چون همه فکر می کردند که رازشان پیش او در امان است. حالا فقط باید می و انتظار می کشید. تا مراسم ماه جولای انجمن بالاخره یکی از این ولگردهای خیابانی اقدام به خودکشی می کرد. از آن به بعد دانکن هر روز روزنامه ها را زیر و رو اما هیچ خودکشی. هیچ خودکشی که بتواند ادعا کند در اصل یک قتل بوده گزارش نشد اواخر ماه جوان بود که پاکت گران قیمت دیگری را روی پادری جلوی خانه دید در حالی که از شدت استراب احساس دل به هم خوردگی می کرد پاکت را برداشت انجمن مردان کامل با کمال احترام جناب آقای دریفیلد نامزد مقدماتی عضویت در انجمن را جهت ارائه مدارک خیش به مراسم شامی که در تاریخ 19 جولای رأس ساعت هفت و سی دقیقه بعد از ظهر برگزار می شود دعوت می نماید. تماس تلفنی متعاقباً برقرار خواهد شد. این کلمات نه تنها دیگر برایش خوشایند نبود؟ بلکه وجودش را پر از وحشت میکرد. این جملات تلویحا او را به زمان مرگش نزدیک میکرد و تنها راه نجاتش به آدمی بستگی داشت که در طول دو هفته بعد اقدام به خودکشی میکرد. از آن به بعد به جای یک روزنامه سه تا روزنامه میخرید اما کماکان هیچ خبری نبود. انگار هیچ شانسی وجود نداشت تا اینکه ناگهان شانس در خانه را زد. بعد از ظهر روز 19 جولای، یکی از همکاران قدیمیش در اداره خدمات اجتماعی به نام هر هیچمن به او زنگ زد. بعد از بازنشستگی گهگاه او را می‌دید، اما با هم خیلی سمیمی نبودند. به همین دلیل تلفن هری در آن روز نامنتظره بود. هری گفت: خبرای بدی دارم. بیلی فیشر رو که یادت هست، معلومه که یادمه. ما حدود دوازده سال تو یه اتاق کار می کردیم. چه اتفاقی افتاده؟ دیشب از بالکن یه هتل پرید پایین و خودش رو به کشتن داده. بیلی؟ نمیتونم باور کنم منم وقتی شنیدم نتونستم باور کنم ظاهرا به خاطر افسردگی تحت درمان بوده من که سر در نمیارم اون که همیشه مشغول شوخی و خنده بود طوری که فکر میکردم باید یک کمدیین میشد بیچاره همسرش باید ضربه سختی خورده باشه دقیقا به همین خاطر بهت تلفن کردم چون ما تصمیم گرفتیم دست جمعی به دیدنش بریم و یکم دلداریش بدیم گفتم شاید تو هم بخوای همراهمون بیای دانکن گفت حتما اما یک دفعه فکری به ذهنش رسید. این اتفاق دقیقا دیشب افتاد. میدونی تو کدوم هتل؟ هتل پلازا. اتاق 1313. راست میگن که عدد 13 نحسی میاره. بیچار بیلی. هرچند دانکن از شنیدن این خبر غمگین شده بود در وضعیت فعلی این اتفاق میتوانست تنها امید رهاییش باشد. میشد وانمود کرد بیلی فیشر قربانی یک جنایت شده است. درست همانطور که او نقشه کشیده بود. بعدها فرصت کافی داشت که یک انگیزه احتمالی بتراشد یک بار در عمرش هم که شده مجبور بود احتیاط را کنار بگذارد و فورا دست به کار شود. پلیس به احتمال زیاد اتاق بیلی در هتل را مهر موم کرده بود تا تحقیقاتش را کامل کند و او به عنوان قاتلی تمام عیار باید راهی پیدا می کرد تا وارد آن اتاق شود و یکی دو تا از وسایل شخصی بیلی را بردارد طوری که بعدا بتواند آنها را به عنوان مدارک قتل همکار قدیمیش به انجمن ارائه دهد. دانکن راهی هتل پلازا شد. هتل ساختمانی بلند بود. نگاهی به بالکن طبقه 13 انداخت. با خودش فکر کرد میتواند وارد اتاق 1312 شود و از طریق بالکن خود را به اتاق 1313 برساند این امن ترین راه بود در حالی که تمام سعیش را به خرج میداد تا وانمود کند یکی از مسافران ساکن در هتل است به میز پذیرش نزدیک شد و نگاهی به قفسه کلیدها انداخت چشمش به کلید اتاق 1312 افتاد کلید در وضعیتی بود که نشان می‌داد مسافر اتاق موقتاً بیرون رفته و کلید را به پذیرش سپرده است. در موقعیتی مناسب که بخش پذیرش حسابی شلوغ بود دانکن تمام اعتماد به نفسش را جمع کرد و جلو رفت. کلید اتاق 1312 اطفاً کارمند پذیرش بیان که به چهره او دقت کند کلید را جلویش گذاشت. دانکن نفس راحتی کشید و خودش را به طبقه 13 هم رساند. خوشبختانه هیچ پلیس یا بر نبود در حالی که مواظب بود اثر انگشتی به جرات وارد اتاق 1311 شد تا اینجای کار کار نقشه‌اش پیش رفته بود وارد اتاق که شد چراغ را روشن نکرد نمیخواست جلب توجه کند اما همین که به سمت بالکن را افتاد پایش به چمدانی گیر کرد و محکم به زمین خورد ناگهان از داخل تخت صدای زنی را شنید توئی المر دانکن خوشگش شد فکر این جایش رو نکرده بود طبق محاسبات او قاعدتاً اتاق خالی بود چون کلیدش در قسمت پذیرش بود صدا دوباره گفت برام مسکن گرفتی؟ چقدر طول کشید؟ مجبور شدی از هتل بری بیرون؟ دانکن احساس کرد سرش دارد گیج می رود قلبش داشت از سینه بیرون می پرید هیچ جای نقشش چنین چیزی را پیشبینی نکرده بود چرا چراغ روشن نمی کنی علمر؟ چه کار باید می کرد؟ اگر یک کلمه حرف میزد، زن بدون شک شروع می کرد به جیغ کشیدن از طرفی هر لحظه ممکن بود چراغ کنار تخت را روشن کند نقشهش با شکست مواجه شده بود و تنها تیرش برای رهایی از مخمسه به سنگ خورده بود المر صدا این بار کمی مزنون شده بود در زندگیش برای هر کاری روالی داشت و همیشه راهی برای مرتب کردن امور پیدا می کرد. ولی الان در مخمسه ای افتاده بود که هرچه بیشتر دست و پا می بیشتر فرو می رفت. صدایی از درون تشویقش می کرد بر اعصابش مسلط شود و ابتکار عمل را به دست گیرد هی hey, به خودت مسلط شو مرد کورمال کورمال به سمت تخت رفت چنگ زد و بالشی را برداشت و آن را روی صورت زن فشار داد ناله های خفه ای به گوشش می رسید و زن تقلا می کرد خودش را نجات دهد. دانکن بالش را محکمتر و محکمتر فشار می داد تا اینکه بالاخره صداها صدا متوقف شدند. سکوت مطلق. دوباره قدرت فکر کردنش را به دست آورد و برای چند لحظه این نفس راحتی کشید. اما واقعیت کاری که انجام داده بود به وحشتش انداخت. او یک نفر را کشته بود، او حالا واقعا یک نفر را کشته بود. سرش به دوران افتاده بود و چیزی در مغزش می کوبید. داشت از پا در می آمد. می‌خواست روی زمین ولو شود و زار زار گریه کند، اما غریزه حفظ بقا دائما به او می گفت فکر کن، فکر کن، فکر کن. حتما تا حالا المر به هتل برگشته بود و کارمند پذیرش به او گفته بود که کلیدش را یک نفر دیگر گرفته است. ممکن بود هر لحظه با کلید یدکی سر برسند و وارد اتاق شوند راه بالکن کماکان امن راه برای خروج بود به طرف بالکن رفت در شیشه ای را باز کرد و نگاهی به بیرون انداخت فاصله بین بالکن این اتاق و اتاق 1313 حدود یک متر بود دانکن نمی توانست این فاصله را بپرد بدون آنکه منظره دلخراش سقوط بیلی را پیش چشمش تصور کند اما قسمت هوشیار مغزش به او می گفت که نباید معتل کند. روی نرده آهنی ایستاد و به بالکن اتاق 1313 پرید. همانطور که انتظارش را داشت در بالکن قفل نبود. در را باز کرد و آرام وارد اتاق شد. ناگهان چراغ روشن شد. اتاق 1313 پر از آدم بود. نه پلیسی در کار بود و نه کارمند هتلی، بلکه چهره هایی که همه آشنا به نظر می رسیدند داشتن به او لبخند می زدند. گیرت انداختیم دانکن. درست به موقع و به جا گیرت انداختیم. او بیلی فیشر بود. زنده و با نیشخندی که تمام صورتش را پر کرده بود. دانکن گفت، تو؟ مردم؟ نه. یکم سر کار رفتی دوست قدیمی، یه لیوان نوشیدنی بخور تا همه چیز رو برات تعریف کنم یک لیوان نوشیدنی در دستهای لرزان دانکن قرار گرفت. همه نزدیک شدند و منتظر واکنش او بودند. قیافه به طرز عجیبی آشنا به نظر میرسید. بیلی گفت: "داری با خودت فکر می کنی که قبلا اونها رو کجا دیدی نه؟ اونها بازیگرند، بازیگرایی که تو فاصله بین پروژه هاشون بدشون نمیاد درآمد بیشتری داشته باشند. البته تو اونها رو بیشتر با عنوان مردان کامل میشناسی. در لباس رسمی خیلی متفاوت به نظر می رسیدن نه. حالا آنها را به خاطر می آورد. دکتر هابکینز، مکفی، جو فرانکس، والی ویندروپ و مایکل پیت، با شلوار جین و تیشرت در حالی که به خاطر نقش عجیب و غریبی که در برابر دانکن ایفا کرده بودند تا حدودی خجالت زده به نظر می رسیدند قیافه هایشان این بار اصلا ترسناک و تهدیدآمیز به نظر نمی رسید بیلی گفت مجبوری تصدیق کنی کلک فوقلادهی بود دانکن بازنشستگی خیلی کسالت باره فکر کنم تو رو هم حسابی سرگرم کردم چرا من؟ خب راستش خیلی وقته که تو رو برای چنین نقشهای در نظر گرفتم و هر هیچ من کجایی هری؟ صدایی از آن عقب گفت: "اینجام." میدونستم که هری هم برای همراهی مشکلی نداره. برا همین با کمک هم این نقشه رو عملی کردیم. کارمون حرف نداشت، نه؟ دادیم کارتها رو با زرافت تمام چاپ کردن. بعدش هم اون ماشین و اون خونه رو برای یه شب کرایه کردیم. بازیگرها رو استخدام کردیم و یه ضیافت شام درست و حسابی ترتیب دادیم. من همون پیشخدمت مجارستانیه بودم هر چند که تو ذهنت تر از اون بود که بتونی من رو با اون سیبیل قلابی تشخیص بدی وقتی دیدم همونطور که انتظار داشتم همه چیزو جدی گرفتی و دنبال راه حلی برای نجاتت میگردی با خودم فکر کردم تک تک پنیهایی که خرج کردم ارزشش رو داشتن میخواستم این نمایش رو با یه پایان باشکوه به اوج خودش برسونم برا همین قضیه خودکشی رو هم کردم و این آخری رو در حالی اضافه کرد که داشت از شدت خنده میلرزید. تو می دونستی من میام اینجا؟ همه چیزو طوری ترتیب دادم که اومدن اینجا به نفعت باشه. گروه قاتلان تمام عیار گیرت انداخته بودن و تو دنبال راهی میگشتی که از این مخمسه فرار کنی. خب منم یه راه نجات برات ترتیب دادم. وقتی از هری پرسیدی کدوم هتل فهمیدم که تعمهی که برات گذاشتی مؤثر بوده. دانکن گفت: بیلی بدون آنکه متاسف باشد گفت بله همینطوره این شغل دوم منه. زنی که تو اتاق مجاور بود. اونم یه بازیگر بود. کدوم زن؟ بس کنین دیگه به اندازه کافی با من تفریح کردین. بیلی سرش را تکان داد ما انتظار نداشتیم از بالکن بیای تو. چطوری پریدی نترسیدی؟ ببینم اصلا داری از کدوم زن حرف میزنی؟ از راهرو صدای برخورد ضربه های چکش با دستگیره در اتاق مجاور به گوش می رسید. دانکن گوش هایش را گرفت. بیلی گفت: "چه شده دانکن؟ چه اتفاقی افتاده؟"